بسم الله الرحمن الرحیم برآمد خداوند به اندازمه نهایت بارش ستایش خدای آفریننده آسمان ها و زمین راست آنکه فرشتگان را پیام آورانی گردانیده که دارای دو دو بال سه سه بال و چهار شار بالند در جهان آفرینش هرچی را بخواهد می افزاید بیگمان خداوند بر هر چیز توانست هر دری را که از مرحمت روی مردم بگوشاید آن را بازدارنده ای نیست و آنچی را او میگیرد بعد از او بازدهندهی نیست و او صاحب قدرت منی و با حکمت است ای مردم نعمت خداوند را بر خود یاد کنید آیا جز خداوند آفریدگاری هست تا به شما از آسمان ها و زمین روزی بدهد جز او خدایی نیست پس چگونه از حق بازگردانده می شوید و اگر تو را تکذیب می کنند بگو من پیامبران پیش از تو هم تکذیب شده بودند و همه امور به خداوند بازگردانده می شود؟ ای مردم بگمان وعده خدا حق است پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد و این فریب دهنده شما را در مورد خدا فریب ندهد بگمان شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بگیرید. واقعا او گروه خود را دعوت می کند تا اهل دوزخ شود برای کافران عذاب شدید است و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند برای ایشان آمرزش و مزد بزرگ است آیا کسی که برایش عمل زشت او زیبا و داده شد گونه ای که آن را نیکو تلقی کرد با کسی که رهیاب است مساوی بوده می تواند؟ بیگمان خدا هر کس را که بخواهد گمراه میکند و هر کی را بخواهد یاب میگرداند از این رو تو خود را با سودای ایشان حلاک مکن و حسرتی را به خود راه مدی بیگمان خدا به آن چی میکنند داناست خداوند ذاتی است که بادها را فرستاد پس ابر را بر منگیزد و ما آن را به سوی زمین مرده راندیم و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده ساختیم و چنین است رستاخیست هر که در جستجوی و عزت است پس باید بداند که عزت همه آن از آن خداست کلمات پاک با سوی او بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد آنانی که در سیسه های ناشایسته را بکار می برند ایشان را عذاب شدید فرا میگیرد و مکرشان از میان می رود. خدا شما را از خاک آفرید، سپس از قطره آبی پیدا کرد، باز شما را همسران یک دیگر ساخت، هیچ زنی باردار نمی شود و نه هم بار خود را می گذارد، مگر به علم خداوند، و هیچ صاحب عمری به عمر دراز نمی رسد، و از عمر او کم نمی شود، مگر آنکه در کتاب ثبت می باشد، و این کار واقعا بر خداوند آسان است، و نه هم این دو بحر که هر دو از نشانه های قدرت خداوند بشمار می روند با هم مساوی هم. این یکی آبی شیرین گوارا و نوشین دارد و این دیگری تلخ است و از هر دوی اینها گوشت تازه می خورید و از زیوری بدست می که آن را می پوشید و کشتی ها را در آن می بینید که آب را می شگافند تا از فضل وی بحرمند گردید و تا باشد که سپاس شوید شب را به روز در می آورد و روز را به شب در می آورد و آفتاب و ماه را رام گردانید هر یک تا زمانی معین به مسیر خیش می روند این چنین است فرمان روایی خدا و پروردگار شما پادشاهی از آن اوست و آنانی که جز او دیگری را نیایش می کنند مالک هیچ چیزی نیستند اگر به ایشان نیایش کنید دعای شما را نمی شنوند و باز اگر بشنوند به شما جوابی نمی گویند و در روز قیامت از شرک شما انکار کار می ورزند و هیچ کسی مانند ذات آگاه به تو از حقیقت امور خبر نمی دهد ای مردم شما به خدا محتاجید و خداوند هم اوست بینیاز و ستوده اگر بخواهد شما را از بین میبرد برد و جای شما آفریده نوی به میان می آورد و این کار بر خداوند دشوار نیست هیچ کسی بار کسی دیگری را به دوش نمیگیرد و اگر سنگین بار بخواهد بار او را بردارد از بار او چیزی برداشتن نمی شود هرچند از وابستگان باشد واقعا کسانی را به گناه معصر بیم داده می توانی که از پروردگارشان غیبانه می ترسند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند کسی که خود را پاک ساخت به نفع خود خیش را پاکیزه ساخته است و بازگشت همه سوی خداست بینا و نابینا مساوی نیستند و نه هم تاریکی و روشنایی و نه هم سایه سرد و آفتاب سوزان با هم برابرند زندگان و مردگان نیز برابر نیستند، بیگمان خداوند کی را بخواهد می شنواند، ولی تو کسانی را که در قبر هستند شنوانده نمی توانی تو صرف بیمدهنده می باشی، به حق که ما تو را بگمان مجده دهنده و دهنده فرستادیم، و هیچ امتی نیست مگر اینکه در میان آن دهنده گذشته است، و اگر تو را تکذیب کنند شو گفته نیست زیرا پیشینیانشان نیز پیانبرانی را که با معجزه ها، صحیفه ها و کتاب های روشنایی بخش آمده بودند تکذیب کردند سپس آنانی را که کافر شدند گرفتار ساختم پس عذاب من چیگونه بود؟ آیا ندیدی که خداوند آب را از آسمان نازل گردانید؟ پس به وسیله آن حاصلات را با رنگ‌های مختلف برآوردیم. و در کوها رده است که رنگ برخ آن سفید و برخی سرخ است و برخی هم سیاهی مشکین هستند از مردم جانوران و چارپایان نیز رنگ‌های آنها مختلفند بیگمان از خداوند همانا بندگان دانشمند او می ترسند که خداوند صاحب قدرت منیه و آمرزگار است بیگمان کسانی که کتاب خدا را می و نماز را به تمام و کمال علام می و از آنچه ما به ایشان روزی دادیم پنهان و آشکارا خرچ می کنن. امیدوار تجارت هستند که هرگز کساد نمی شود. یعنی از رواج نمی افتد. تا به ایشان مزدشان را کامل بدهد و از فضل خیش بر ایشان به بیگمان او آمر زنده و پاداش دهنده است آنچه را به تو از کتاب واهی کردیم هم آن است حق و تصدیق کننده کتاب پیشین است حقا که خداوند به حال بندگان خود کاملا آگاه و بیناست سپس کسانی را که از میان بندگان خیش برگزیدیم وارث کتاب ساختیم از این میان بعضشان برخیشتن ستمگارند بعضشان میان روند و بعضشان به اجازه خدا به امور نیک پیش می کنند و این است فضلی بزرگ در بهشت جاودانی که به آن داخل می شوند های از طلای مروارید نشان به ایشان پوشانده می شود و لباسشان در آنجا ابریشمین است می گویند ستایش خدای راست آنکه از ما غم را زدود حکا که پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده است آن که ما را به فضل خیش به این اقامت گاهی دایمی جایگزین ساخت که در آن نه به ما رنجه می رسد و نه هم احساس می کنیم. اما کافران برای ایشان آتش دوزخ است مرگ و سراغشان نمی‌آید که بی و نه هم عذابشان تخفیف می شود. هر ناس پاس را این گونه جزا می دهیم. در آنجا ایشان فریاد می کنند که پروردگارا ما را بیرون آورد تا عمل نیکوی را غیر از آنچه می کردیم انجام دهیم و ایشان گفتم می شود آیا با شما در دوره زندگی دنیا به حد مهلت ندادیم که هر انسان پند نیوش در آن پند می گرفت و در این حال برای شما بیمدهنده نیز آمد چون فرصت را از دست دادید پس اکنون این عذاب شدید را بچشید که حالا برای ستمگاران مددگاری نیست بیگمان خداوند به همه چیزهای نهانی آسمانها و زمین آغاست و نیز بیگمان به آنچه در اندرون سینه آگاه می بخشن که شما را در زمین خلیفه ساب پس هر که کافر شود زیان کفرش به خودش عایت می شود و کفر کافران در نزد پرویدگارشان جز خشم چیزی را افزون نمی سازد و کفر با کافران جزیان هیچ چیزی دیگری را نمی بگو آیا آنها را که به خدا شریک می آوردید و به ایشان جز خدا نیایش می کردید دیدید با من نشان دهید که چی چیز از چیزهای روی زمین را فریدند یا چی شرکتی در آزمانها دارند یا به ایشان کتاب دادیم و آنها از این کتاب بر این دعوی خود دلیل دارند بلکه واقعیت این است که ستمگاران یک را جز به فریب و نمی دهند. بگمان خدا آسمانها و زمین را نگه می دارد از اینکه از جای خود زائل شوند و اگر زائل شوند بعد از آن هیچ کس آنها را نگه نمی دارد که او صاحب حلم و آمورزگاه است برسخترین های خود به خدا سوگند یاد می که اگر برای ایشان بیمدهنده آمد واقعا از هر یک از اقوام دیگر رهیابتر خواهند شد اما چون بیمدهنده و ایشان آمد جز به نفرتشان نید رود. برای سرکشی بر زمین و دسیسه زشت ولی دسیسه زشت جز به اهل آن دسیسه آسیبه نمی رساند آیا ایشان جز همان سنت پیشینیان را که مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتلا شدند انتظار میکشند؟ پس برای سنت خدا تبدیلی نمییابی و برای صنعت خدا تغییر نمییابی آیا در زمین سفر نکردند تا می آنانی که پیش از ایشان بودند به چه سرنوشتی گرفتار شدند با آنکه آنها نسبت به اینان نیرو و توانایی بیشتری داشتند آری هیچ چیزی در آسمانها و زمین مانع اراده خداوند شدن نمی‌تواند. بیگمان خداوند دانا و تواناست اگر خداوند مردم را به آنچه می کردن معاخضه می کرد بر پشت زمین جانوری را هم نمی گذاشت مگر مرگ ایشان را به مدت مشخصی به تعویق می اندازد و چون می عیادشان فرار رسد پس بیگمان خداوند بر بندگان خود بیناست